بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمين آلمین و الله عنه و رسول الله و آله طیبین و طالین و مرسومین و یعنیت دارمتان اللهم حفظیقنا و جمعیت به گمبندی کلی رمالات غنا و اقوالی که گفته شد از آمه و خواسته خواسته رو تقریبا اجمالا گفتیم از آمنه رو یه به خاطر وردی کلماتشون نسبتا تفصیل بیشتری شد و اون جنبندی نهایی راجع به خود, خود و بعدش و بعدشم جنبندی نهایی راجع به تشکیس موضوع انشاءالله تعالی از کلم روش بحثی رو که ما مطرح کردیم طرح مسئله از اون دید اسلامی نهره کردیم از اون افراد آم افعلا عمومی افق واسعی که کل افقه های اسلام با مذاهب مختلف رو عرض کرده بزن در بگید به لحاظ کلی طبق همون قاضی یا که در کلیه قلوم هست ما ابتداعاً معلوم های رو مطرح می‌کنیم و بعد نقاط رو و نقاط شک رو توضیح میدیم عرض کردیم اده از آیات مبارکی قرآن هست که راجب لحول حدیث یا شیء مناسب و او صحبت شده مجموعه آیات رو ما تمام این آیات در مکه نازل شده و از کردیم سه آیه در روایات در کلمات اهل سنت بنابرا مشغول به شده لحوال حدیث هر آیه مبارکه انتون سامدون با سیم یعنی مهنم گفته شده مهنم از ابن حباس شده و یکی هم مستخز منستت عطمن هم سوتک یعنی سوت شیطان این سه آیه در کتب اهل سنه در روایات شیعه آیه اول آمده این دو تا آیه دیگه نیامده در روایات ما در بعض از کتب تفسیر شده همون در روایات ما نیامده به جایی بود تا آیه مبارکی دیگری الاده نلایش هدون از زور و وشتنه بود قول از زور. مجموعه این پنج آیه ای که در اینجا آمده این پنج آیه مجموعا آیات مکیه کلن آیات مکی این یک نکته برس یکی دو سال روایت دیگه هم احمد علیه مسترام در در روایت ما آمده که اون تو بحث سمای قناعه نه توی بحث خود قناع این اول راجه به آیات نکته ای که باید در نظر گرفت که کلاران هرز کردیم راجب به غناجیهات مختلف مثلا شعر کردیم در مکاسب شیخ انسالی در سجا او برده یکی راجب به بی مغنیه است، یکی راجب به آلات غنیه هست یکی راجب خود غنیه این سه تا عنوان است که در مکاسب آقا خود مرحوم کلینی مثلا قبل مخوام بگم تازگی ندارم مرحوم کلینی به درست الله نفسه یه مقدار از روایت بنار توی همین مکاسب اجر اجر مهنگی اینها آورده توی جلد پنجم یه مقداریش رو هم که معظم روایتی روایت که ما از کار روی در جلد هفتم با بلعشربه آورده ایشون یعنی این نوطه رو مخواستم توضیح بدن خدمت آیون که در عده زیادی چه از کتب ما از کتب احرس و مسائل غینا در افوان و مختلف مثلا رو توی باب غینا بود، امود توی باب غی اما خود غینا رو غالبا اخلستاندر تو باب شهادات رو بزن. تو دابا قضا و شهادات به این عنوان که آیا شهادت مغنیه قبول میشه یا نمیشه اونجا چون بحثشون قبول شهادته ادهی و قادر شده که حرام نیست غینات اما چون خلاف مروعته یعنی خلاف مردانه است. مناسب میسته انسان تو خیاب را براقی را بکنه مثلا. طرد و شهادت او از این جهت یعنی انسان صفیهیه مثلا انسان است که مراهاتش اون رو نبکن پس معلوم شد که قنا جهات مختلف داره یک جهت واحده ای نداره که ما الان اینجا مختلف کنیم. این نقطه دوم در این که از مجموعه آیات و شواهد تاریخی در میاد که غنا در مکه مکرمه دارای خصوصیاتی بوده هم به اصطلاح همراه با شربخم بوده هم همراه با فحشا بوده ساختمان های اطاب های مخصوصی خانه های مخصوصی و زنهای مخصوصی که اصطلاح هم به اینها زباق رایات میگن مطرح بودن بعضی از اهل مکه متحمدن این کار رو ترویج میدادند برای مقابله با رسول الله یعنی غیر از اینی که خودش همراه با یک از اعمال محرم بوده اون هدفی هم که درش بوده هدف محرمی بوده اون نکته رو در رو و لذا به همین آیه مبارکه به من ناس منیشتری دهدال حدیث لیوغه لعن سبیل الله اینجا لام رو ارده که حالا ممکن لام رو باشه یا لام رو باشه که هدف اینها اظلا لعن سبیل الله هی. و لازم هم نبوده که این خوب دفت اگر کن در آی مبارکه لازم هم نبوده که این ازلال حتما به غنا باشه لحوال حدیث نگمت لیوزه لحل سبیل الله به به توش نداره چون یک مجموعه فضایی بوده که در اون فضا من از سبیل الله و, عزبیلّا و, عزبیلّا و, عزبیلّا و, عزبیلّا. و ازلال از سبیل الله و یتخیضها وزوها کار دو ظاهرا ازلال راجع به دیگران میشه یعنی راجع به دیگران سعی می کرده که زمینه های ازلال رو فراهم بکنه و یکتا منم که این ازلال به خود قنا نسبت داده بشه که قنا این حالت رو ایجاد میکنه. و یک تخیرها ها هزو و آیات الله رو به عنوان مصدره و استهزا بعد دقت بکنید در اینجا البته خاید گفته در اهل سنت گفتن آیه مربود و مشکینه اگر لام نبود شاید واضح بود مثلا من منیشته لحول حدیث یوزل برن سبیل اللام چون لیوزل لرن سبیل لام با آمدن لام نمیشه بگیم آیه اختصاص رو ما داره بعد آیه بعدی و ازا تطلا این خیلی عجیبه اینجا واب داره اگر واب نبود ازا عليه علیه آیاتونا این صفت برای همون منیشته لحول حدیثه ظاهرا آمدن لوا به عنوان یک نقطه سرگم لغوه لای سبیل الله و یتخذوا حجوا و ب اضافه تلا اگر در این شخصم آیات ما رو بخونیم مستقر دارن. و لا منفکی دارند کلمی اسمعه این وضعی است که دلای مکه دارد و کذالک در آیه مبارکه دیگه اخ من ها در حدیث تعجبو و تلحکون ولا تبکون و انتم سامدون این حدیث آیات و مبارکه از کلام الله هست. آیا شما از کلام الله تعجب میکنیم و به غنا میاریم این آیه هم مشعر به اینه که غنا نقطه اساسیش مقابله با قرآن بوده یکی از, از این حال یک مش محرمات با اون بوده ما نقطه تاریخی رو در نظر بگیم این راجبه نقطه سه ما نقطه چهارون در مدینه در زمان خود فهمند را اطلا منحیص المجموعی نحب ما یا سما به قناعی رائش بوده حالا حقیقت اون چه بوده یک مقدار مثلا زنها یا کنیزکان بیشتر کنیز مثلا می کندم چون برای کنیز خیلی حرمت اونجوری قائل نبودن احترام به قائل نبودن دیگه حالا مجموعی شواهد تاریخی در اینجا کاملا به اختلاف داره گفته شده پیغمبر گوش کردم گفته شده مثلا ابو بکر آمده گفته امسما رو شیطان فی پیغمبر صلی الله گفته شده یک زدن اون نار کردن دست گذانند پیغمبر گوش خالص نذاشت ابو بکر همون دست می‌شد عمر تو همون دست گزارش زمین رو دست نشه یعنی اگه دست مخفی بکنم این تو که پیغمبر که شیطان و باطل اسفارد یعنی عبارات عجیبی که از یک طرف میخوام مخانم بگم, بگم که این غنا باطله از یک طرف مخانم مثلا بگم پیغمبر اکنین باطل گوش میکردن از تا جیب ماکان علاقه که به مکان مدینه یک مقدار اختلاف هست و اصولاً یک مقدار صحبتی که به مدینه هست یکی نحوهی که اینها بوده یکی هم صحبتی بوده که پیغمبر اجازه دادن تو عروسی ها خونده بشه و حتی در یک گروه داره که فیغمبر در ابن ماجه داره فیغمبر فرمود به این که مثلا عبوس رو می از خانه انصار مرده فیغمبر که انصار اهل شعر و غزل هستند. وقتی اون شعری که ذکر شده که فیغمبر خوندن این جنبه شهبانی تحریک تحریقی نداره جهناکم جهناکم فهیانا و هیاکم ما آمدیم ما زنده باشیم شما زنده باشیم حیام به اصلاح دعا برای بکره های تود خدا ما رو زمین نگرده و خودام شما رو زمین این هیچی توش نداره معذاره در بعضی در رویات ما آموده که این دروغه پیغمبر چیزی نفرمونه اما این آمده یکی هر اون قصه آیشه که در صحیح مسلم و صحیح بخاری و دیگران آمده که پیغمبر از ابو برکانا جروگیری می کنه پیغمبر فرمود که لکل قوم اید و هادا ای یعنی یکی فرح و یکی هم عرض البته اون غنای اولا اون بچه ها بودن کوچیک بودن جاریتان من الانسان تغنیان و لیستاتا به مغنیتین آیا بچه بودن اون بچه که به اشعار یوم باعث باعث جزه جنگ بوده طبیعتا اشعار جنگ بیشتر مفاخره است که ما چه قهرمان های داشتیم اینا در خون خودشون قلطیده اینا دفاع کردن اینا توی چیش مفاهم هیجانی و شهبانی نداره اون شعری هم که در عروسی نهارو شده اون هم نداره جنبه در ما این مجموعه رو در نظر بگیریم مجموعه ای که نهارو شده و اون چی که در مدینه تدریجا بعد از پیغمبر اکرم رواش پیدا کرد با عنوان غنا افرادی بود که مغینی بودن اصلا مرد است. شاید مثلا در اصل که عبد بودن بعد آزاد شدن و شاید بعضیشون بعضها که قفعا همین تو که بعضیشون اصلا قفعا عبد نبودن مثلا این خاننده های که الان در دنیا وجود دارن این نیست که عبد باشه و اون چه که الان ما مجموعا داریم از مجموعه آثارشون اینه یا مثلا شعرهایی بوده که بعضاش آشهاره هست بعضاشان تهیجاوره که این کتاب اقانی خیلی چه چند کرده و ضبط کرده و گاهی فقط اونها بوده گاهی هم با مثلا بربت و اینها بوده همان اینکه در مجموعه شواهد حالا کار به صحت و صحب نداریم توی آلات موسیقی که متعارف اون زمان در حجاز بوده دفت نسبتا راهشتر بوده نسبتا حتی ادده از عالم های اهلسانان درنده شده احمد و نهنبر گفته بود با درفت بله اصلا مستحب به درفت زدن برها شواهد مجموعش نشون میده که درفت رائشتر بوده بربت و عود و انواع دیگر آداتی که بوده اونها اینقدر رواج را این راجع به اجمال مطالبی که ما میدونیم پس اون که بعدها در مدینه بود صدای لحوی بود خاندانگی های نحوه خاصی بود این خاندانگی ها هنری بود با ترتیب خاصی کار کردن در کتاب عوانی گاهی اوقات یک شعر غزلی رو به ده بیت جور نوشته که فلانی با این دست با خون. فلانی با این جور خون فندم از اون استطلاعات از, از اون استطلاعات اطلاعی ندارم سبيل اول فلانی چیزی نوشته که قرع او فلان انشاد و فلان غناء و فلان به این لغت غناء و فلان افراد مغنی اسم این تا اینجا ما می توانیم شواهد رو خیلی واضح پیگیری کنیم محل خلاف از هم بعد کتابشناس قبل از تمام شهادت خیلی مثلا بنای خاننده کید بعد تاریخ نمیشتن خیلی استخبار درست نه نداره. معزز اسم بردن مثل ابن سوره جو معدد نه وجوز مقنیه در که که مدینه مرد. طور خاصی اسمش کتاب ارغامی هست دیگه مراجعه به کتاب خوبی نیست چون واقعا بعضی از شعراش خیلی مزخرف این کتاب خوبی نیست ارغامی فقط یک جلدش که اول چاپ نکردم بعد چاپ کردن تو اول چاپ نکردن آخرش بعد چاپ کردن بسیار مزخرف اونجوری این اینکه اتماکان اصلا این معروف منم اگر کتاب خوبی باشه فرق میاریم چه جوری قنایون یا کتاب مراجعه به این کتاب کاملا واضح نحوه غناهایی که بوده و تأثیرهایی داشته مخصوصا یکی دوتا اشعارهای قذرسرهای عرب هستم انساخن هم شعرشون خیلی قویه این بلا حاضر شعری من نمو کنم باید اون بحث بشم یکیش عمره نبی و شعراش واقعا محیجه من چون بنامه که شه صحبتایی که در تاریخ آمده اینجا عرض بکنم شعرهاش بسیار قویه در غذر غذرهایی که میگه فوق آده قویه و عرض کردم یک بحثی که ما این بحثم سابقا مطرح شدیم بحثی که بعدها آمد بین علمای های اسلام تشبیه تشبیه بریم غذر که میگه در اوساف زن بلا اشکالی که از مهمترین تشبیه های شعر عربی غذرهای عمره نعوی نبیه هست فوق آده هست مثلا فوقل آده هست. حتاً یقال هم به لحاظ معنا بسیار لطیف و رقیقه و هم به لحاظ اختیار الفاظ خیلی بغلاده از ایشون و موجب فساد اساساً موجب فساد حالا من وارد اون خصوصیات نمیشم چون بله بحث ما نیست اون چیزی که ما من هیص مجموعه الان میبینیم ظاهراً حالا اون ترجمه شاعرانه از بعد از رسول الله زمان رسول الله هم از همان شباهت فراوان بر در اینکه مثلا عبوبک یا عمر تعبیر میکرده از اینا به مزمار و شیطان اما مزمور و شیطان مزمور و مزمور هر دو زفتش صحیحه بزن اول به فس همون اما مزمار به کس اول اما مزمار و شیطان فیاد زفتل و قبیش هم هر دو یکی از. و انصافا به این که نشون میده که در ارتکازشون خوب در قصد بخونی اون وستفز منستطعت به صوته که خداوند به شیطان میگه استفزاز دروغ یعنی انگیزاندن یعنی هیجان زدن راه انداختن به به, صلاح... به کسی رو بادار کردن به شور و افراد رو وسط از ال... من الاباد از م... از مردم به صوت به صوت شیطان با صدای شیطان تو اینا رو به قول و حیجان به قول ما بحث و هیجان بیاد به هیجان آوردن برانگیختن مردم رو با صدای خود برانگیخت برگیختن مردم با صدای خودش این تعبیر در مکه بوده و معلوم بوده که در اصطلاح مسلمان ها این رو و شیطان می دنستن و شیطان می دارستن. از عرف این با مجموعه شباهه کاملا واضح یه جنای دیگری هم در میان مدینه بوده این گاهی مثلا از آفریقایی که می از سیاه ها از حبشه که می آمدن رقص های خاص محلی داشتن که این موازین رقص و خواندن و اینها بوده البته این جربه های تهیجی توش نبوده اونوا همین رقص و اینها داشته و الا دیگر تهیجی در این جور چیزها متعارف نبوده و یکی دیگه هم که داشتن مساله خواندن به لطیف مخصوصی برای شطور بوده برای که شطورها رو تهیج بکنن که خدا بهشون یا یهودی به زبان فارسی هودی خان. این مجموعه ای آثاری است که ما داریم از زمان خود صحابه ظاهرن خلاف از زمان صحابه شروع میشه و مخصوصا بعد صحابه برکر ظاهرن دیگه خلاف ادهی از صحابه معتقد بودن که این غنایی که الان در مدینه هست که البته اون مغنی به حضر زهار مسلمانه نماز میکنه و توش رقص نیست و توش فصل بین که شراب نیست توش دعوت به شرک نیست چوش یوزن زع السبیل نیست این حرفا توش نیست دیگه یتخذوا آیات الله اوذ نیست این جنا اون جنایی نیست که در آیات مکیه حرام شده این سوال این بود آیا این جنای مدینه همون جنای مکه است در اینجا اون که واقع شد حالا بحث حجیت زع عدم حجیت بعد اون که واقع شد این بود ادهی از صحابه حتی بزرگان صحابه مخصوصا صحابه ای که در مکه هم با رسول الله بودن مثل عبدالله ابن مسئول چون از عبدالله ابن عباس هم نرمش شده اما عبدالله ابن عباس در مکه نبود اصلا میگن در سال هجرت به دنیا آمد دوران مکه رو اصولا درس نکرد عبدالله بن عباس الان حالا بعد بهش نرمش کردن الله خودشون درس نکرد. عبدالله ابن مسعود معتقد بود این غنائی که در مدینه هست این همون است لحول حدیث. از سادیدی که به صحابه داده شد در کتابه سنت اعتراف دارند که سنده به عبدالله ابن مسعود صحیحه همونه بعضی مطمئن زعیفه لیکن مشهورشون من فعلا دارم چهارتار هستم مشهورشون قبول دارم مخصوصا تعبیلی که ایشون داره سه بار قسم خورد و لاهه خوبه غنائی در لحوالحدیس اپتقدر بکنیم که ارز که احتمالا احتمالا خوبه زمیر برگرده به لحوالحدیس الاخلام و الغنام برای اهل حضوری باشه یعنی این غنایی کنان تو مدینه هست و الله و الغنام اون لحوالحدیسی که در آیه مکیه هست همین غنایی کنان در مدینه هست خب از عبدالله عباس هم نفله از صحابه دیگه هم یه مقداری احل سنت وقتشون رو صرف این کردن که درست یاد بعد از تابعین هم زیاد نرف شد یکیش این بود این اولین نزاهایی که بود این بود که بین اونا از تابعین هم اده زیادی از فقها هم نرف شد در روایات احل بیت هم آمده اون قسمت که به ما مروض میشه پس از زمان صحابه اون وقت از قرن دوم به بعد اضافه بر تمام اینها از رسول الله هم نعروف شده از رسول الله به توسط توجه که من دیدم یه رواز بیشتر نیست یک راضی بیشتر نیست یک صحابه بیشتر نیست ابو امامه بایری که روازی تو ترمیزی هم آمده وقت تعابیرش مختلفه پیغمبر وقتی تحریم قنار میزنن و فیذالک انزل الله علی و من الناس من خود پیغمبر در مدینه وقتی نحیه از قنا خود دقت کنیم پیغمبر میگن یعنی اون آیه هم این نازره پس یک بحث این بود که آیا پیغمبر فرمودن یا صحابه یواشواش من میگم چه که بحث منم خاطر های بحث رو یک برس این شد که ها اصلا پیغمبر پرمونده اونو آیه را جبنه خیلات یا این مطلب صحابه است مشهور محدثین و بزرگانشون امسال بخاری و حتی خود ترمذی به اقنه هست اینا اصرار دارن که این مطلب مال پیغمبر نیست حدیث ابو امامه ثابت نیست لکن نسبت به صحابه قبول دارم من میخوام یواشه باش اضافه بر این حدیث که تطبیق آیه است هرس کردم در قناه مطالب دیگه هم هست مثلا راجعه با آلات قناه هم ابو امامه نقل میکنه. شاید مشهورت این حدیثشون در آلات قناه در مستند احمد هم آمده که پیغمبر کنم اینالله به اصلی رحمتن دلالامین به اصلی به کسر برابطه و المزامیه که اصلا اینا رو پیغمبر من وزیفم اینه که این آلات رو از بین ببرم به سر مبعث مجیمه این اشهر رو بات این بسته جناب آقای ابو امامه باهیلی باز نقل کرده که سمن مغنیات سخته حرامه یعنی از ابو امامه باهیلی هم در تطبیق آیه در دو سه تا فرعه غنا نرک شده هر روزه ارز کردم بزرگان حدیثشون در بلحاظ سندی در اینها اشکالی وقت احادیث دیگری که از پیمنبر به متون دیگر از روبات دیگر لیکن تقریبا میشه گفت که اونی که از همش رومشندتر و واضح مال همین حدیث ابو امامه باهی این یک صحابه هم که مطرح شد تابلی من مطرح شد حده ایشون داشتن که این غنایی که در مدینه هست اون نیست و لذا اگر میخواستن اثبات و حرمت بکنن در اصطلاحشون این آمد رو مسئله سنت نه فریزه یعنی اون غنایی که مسلما حرام بود همراه بود با اون اعمال محرم و هدف از اون هم یوزلن انصبیل الله بود و رضا مثل ابن حرز مصر که اون آیات مبارکه نازر است به کسانی که و انصبیل الله یک تخضه ها و زبان و ارز کردیم که بعضیشون مسررم که آیات مبارکه راجب مشرکی نهستن چون این مغرمیه های مدینه مسلمان بودن نماز نبودن اینا مشرک نبودن دقیق فرموندیم این استدلال اونها استدلال این طرف صحابه این بود که چون خدا منده متعال از این مجموعه اوامل خوب دقیق فرموندیم از این مجموعه اوامل رفت و عنوان لحوال حدیث رقص و چربخم رو فهشا و اینا دکنه رفت روی لحوال حدیث پس نقطه لحول حدیثه این نقطه لحول حدیث تو قناع مدین هم وجود داشت روشن به بحثیه این بحثی بود که بین اهل سنت مخرق شد انشاءالله بر از اون روشنش شد یک روایاتی بود که بر رسول الله نسبت داده شده بود دو اقوالی بود که به صحابه نسبت داده شده بود سه اقوالی بود که به فقه ها و از اون طرف هم به تابعین و بعد به فقه ها حسبت داده شده و, و اون چه که موجب تعجب ماست اقوالش هم یه بدا متضاربه از یک طرف مثلا میگفتن در مدینه غنا رایج بود از یک طرف از مالک امام احرمد مدینه حسابش میکنم میگفتن نما یفعلو کن ادامه الفوسا خونده نباره شد بلکه ایشون ادعای اجماع کرده که غنا حرامه ادعای اجماع مطرح شد که قناه حرامه این مجموعه یه عواملی بود که استدلالاتی بود که اهل سنت داشت خب به طبیعت و واضح شد ادعی فی با بعد میگفتن روایات رسول الله فراوانه ولو ضعیف باشه یک برو یا قبلی بعض و بعدا دومون میگفتن که حالا برپرز مال قسمت رسول الله واضح نباشه قسمت صحابه کاملا واضحه و اقوال صحابه در این جهت حجیت داره مهمترین قسمت در مقابل اونها یکی روایت عایشه بود یکی روایتی که جهناکم جهناکم مال ارث از اینجا این تولد این فکر سوم پیدا شد و اون که ببینیم قناع مطلقاً حرامه الا اینکه در ارث و در عید اشکال نداره اعراس و حیات. در این دو تا اشکال نداره اینم مسئله تخصیص مسئله تخصیصی که مطرح شد در این دوتا. در حقیقت اون به نظر ما صرف وارد بحث به نظر ما مسئله تخصیص مطرح نیست اصولا اون جنایی که در مدینه یعنی در مکه بود و لحول اهل حدیث بود از مورد اه اه عروسی اصلا خارج بود چون این مفروض این بود که زن های اونم مستمعین زن بودن چه دریام که حتی مضمون باسری نداره که جناکو جناکو چیزی خاصی نداره هیان و سحیان و هياکو خاصی درش نیست این به طور کلی اون قنای مکه و حتی قنای مدینه هم منصرفه این به تخصیص نداریم خود به خود مثل اینو نمیگیره مخصوصا که یک تعارفی بوده یک سیری بوده در بشر همین زهر است سعیشون اینه مسائلی که مهمه و تجربه اجتماعی داره اینا ابراز بکنن به طور طبیعی پسشا بهیه کیلو گوش میخرید این خیلی سر و صدا و بره بریسید هم خانه که میخری وه و دفتر و اوضاد مییسید. یکی از مسائل اجتماعی که آثار فراوان داشت و خیلی آثار داشت ازدواج بود. ا همیشه در تمام توریخ بشر ازدواج با رو اعلان همراه. چون معلوم میخواست بکنه که این آ شوهر اون خانم این خانم مثلا همس این بچههایی که بعد مییان زلدگی نفرله روابط اجتماعی، و لذا این به طور در زندگی بشر بود که مثل مسئله ازدواج که یک نوع سرور و شعبیر هست با یک نوع اعلام همراهی لذا در همین رواست احرسانت داره که نکاح صفاح که نیست زنا که نیست اعلن نکاح این رو اعلام بکنیم این رو علنی بکنیم هست که در این رواست رسول جنبه ارشادی داره هنوزم که هنوزه در جوامه بشری مجالس عروسی رو اعلام میکنه. این سرش به خاطر اهمیت آثاری که باید میشه و لذا این که مثلا اعلام بشه و زنها باشن یا مردها باشن و چون راه با یه نوع فرحه شعر خونده بشه آوازی خونده این یک مقدار بشه که مثلا متعارب بوده اون چه که در روایات ما آمده و در فتوایی بعد منعکس شده یک نسا با نسا باشن دولا به بلعباتیم و فقط شعرهایی بخونه که مثل همین شعر که الان ارز کردن جنبه های تحییج و شهرانی و تحریک توش نباشه اینجور شعرها رو در حقیقت اگر آزمون درقت بکنه خروج اینها از و از اون زمینه که بوده خروج موضوعی است تخصصا خارجه مثل صدای شطر هدیه شطر هدیه شطر هیچ صحیحی برای انسان رو ننه باید شطر رو بابندازه یعنی اصلا عنو نه اینکه این واقعا ایناس ای شعبانه, ای نه اس به تخصیص می دند هیچ جنبه چربانی هیچ جنبه نداره لذا ممکن است مسئله اعیاد و مسئله به عراس این تخصصی خارج بوده دنبال در این به اگر ما تو پای دیگه تخصیص بگردیم انصافا تو روایات ما دلیل واضحی بر تخصیص نیست با اینکه میشه گفت یک نوع ای بین مسلمان ها در حد جایی بوده نمیشه انکار کرد سیره ولی اجماله در چی ها؟ اینو خیال کردم قناعی مطلق صوت خوب این صوت خوبش کن این نیست این باطل، این تصور درست نیست این تخصیص درست نیست. از این تصور این درست خب تا اینجا روشن شد تر نیست توضیحه تا اینجا اگر مطلب چیه من دیگه نمیخواد زیاد توضیح بدم، نتیجه این شد که ادهی از علمای اهل سنت یا کل روایات رو تضعیف کردن قائل به یفت شدن مخصوصاً این یکی دوزاره بایده که از آیشو اینها نرشده یا کلیه روایات رو تقریبا اجمالاً قبول کردند یا اقوال صحابه داره قبول کردند یا یه روایاتی دیگری که خوندیم که پیغمبر فرض بعد از من کسانی سر امکان حرام رو عنوانش عرض بکنن. یکم معاذر بود. که می‌خواستم بگم این معاذر رو این حدیث فرضش صحیح در بخاری آمده. از این هست اجمالت ولی اونم یک اشکال سننی کهشون داره که جای بحثش در پیش راه نیست. مراجعه به شروح بخاری بشه. الان که امکان اونی که الان ما در اختیار داریم و ادعایشونام که خوندیم من جمله همین نیل اوتار شوکانی ایشون سعی کرد تا جایی که میتونه کسانی برده که قائل به قناه بودن خیلی هم ذکر کرد ایسی بود لیکن معل... که کله در آخر بحثش گفت احوث این است که از قناه اجتناب بکنه و از کردن شوکانی با اینکه که آزرگزات دولت زیدیه بوده آراء زیدیه را نرونه کرده در کتاب یحیبنال حسین الاحکام شد که امام معروف و امام ال اونجا هم نه جنا نیامده این ترجمه شده بلکه در شرح الازهار که از کتب بسیار مهم زیدی است تعبیرش اینه زهره الاطره و من تابعهم اله حرمت الاطره این نسبت به کل اطره میده اگر بگه زهره الاطره شامل ائمه ما هم میشه مرادش امام باقر صادق هم میگیره اصطلاح اطره شامل تمام اینها میشه حتی شامل حسن و اینها هم میشه اختصاص به بن حسین هم نداره زهادت الاسکری میگه مراد مطلق بزرگان اطرا چی از بنی حسن چی از بنی حسین چی از حکیم اسوی عباس اولاد از درواز اگر فقا و علما رو روشن و بعد تابع هم من من باها هم نمیکنم این تا اینجا با مجموعه برخوردی که علمای اهل سنت با این روایت داشت روایت خود خصوصی خرابانه بود چون امروز فاصله شد میخوام سریعا یک دوره از اول تا آخر فقط اگر اول کتاب پیشون باشه که بعد بتونن این رو به اصطلاح شماره گذاری من از کتاب جامع الاحادیث تونک رو روایتش خوندیم و صحبتش کردیم وارد بحثاش نمیشم فقط به عنوان به اصطلاح مسئله اه این که اجمالا یک سری از روایات ما به دست بیاد اش کردم در باب 19 الابواب ما یو سطر ایشو با 19 رو آوردن چند تا آیه آوردن اون دو تا آیه‌ای که من گفتم ایشو نیاوردن که اضافه بشه اما روایت روایت اول شماره 1 که در ذیل آیه غشت به قول زور، این روایت سندش در کافی هست فقیه کافی از معتبره یک مرسل نبی عمره که رو معتبر حساب کرد در دعای من هست که مرسل حدیث شماره دو به سندی مشکل داره به سماه و بر برمیگرده که اونم تفسیر قول زور به من مهمش اسم امام هست حدیث شماره یک انه عبدالله شماره دو هم انه عبدالله حدیث شماره سه که سندش مشکلات سندی مشکلات سندی زیاد بردن که یکی داره خیلی مشکلات داره از عبی عبدالله وجه و از زوری حدیث شماره به اصطلاح چهار این حدیث مشکل سندی داره اینجا هم دخلت و ابی عبد الله قال الغنا اشتنق الغنا از امام صادق مضمونش خیلی خوبه اما سند و ازش مشکل داره حدیث شماره به اصطلاح پنج این هم مشکل سندی داره که علی ابن نوی اونم قول از زور دوست داره فشتن و عورتنم امام علی عبد الله من حالا عمدش این قسمته تا اینجا احادیث ما علی عبد الله حدیث شماره 6 رو در عوالی که خیلی ضعیبه از ابن عباس و ابن مسعود فی تفسیر قول تعالی و قول از زور من در کتب احر سنت از ابن عباس و ابن مسعود و قول از زور نمیدونم والا ممکنه جای باشه اصلا عوالی خیلی خرقاتی میکنه کلام از ماست و از مجاهد عطا و, مجاهد، و مجاهدی یا عطا یا مجاهدی که اینطور از عبدالله مسعود نگیدن اصولاً آیه مبارکی ولدین لا هدون از روب یا وشتر و از روب من در تفاریل احرسان در تونجهی که من دیدم نه از رسول الله حدیث دارن و نه از صحابه از تابعین این دارن این کتاب اوالی ما چون اوالی خیلی قراراتی کتاب هستو پداییه برما ایشون از ابن ح در فشتن با قول از دور و قولی همه ناس منیشتری لحوال حدیث تو لحوال حدیث درسته سندشم درسته پیشه مشهور اونها حدیث شماره هفت همیزون خیلی ازش خرابه از صحابه سود مستر خیلی ضعیفه حدیث شماره هفت از تفسیر علی ابن رایم این سند الان صحیحه اگر تفسیر رو قبول بکنیم لاقل این کتاب موجود رو اون قسمتی که از علی ابن درسته. این هم قول زور رو به جنا این سند حدیث شماره به اصطلاح 8 این هم ابن این سند کاملا صحیح مشکل نداره روایت ابي حوای اون اللذین لا يشهدون الزور و مرحوم كلینی هم نقل کرده با مرتبه اون هم درسته حدیث شماره دو. از دعانم از امام صادقه که مرسل حدیث شماره ده میشه قبولش کرد قابل قبوله و خوبه از محمد نوسلم از عبی جعفر چون ما یه مقدار تسرسل اصماء ایمر هم حساب بکنیم این اولی رواد نبی تمام روادی که داره خوده نبی عبدالله این سندش هم قابل اصلاح یعنی خوبه صحیحه این عنوان الیه نام ما و اگر لا تا حالاعل نام وط ها آ ها راجب یه راجب مشرین که اولاری که در عذابان علی میشن این در تخورظ آمده را اسم نبرده که از کدم مامه؟ بله این در واقعن هم آمده و اسم اعام و نبرده اینا فل در شماره دوازده، در دعای مرسده اما از امام صادقه در لحظه حدیث شماره سیزده در کافی آمده سند مشکل داره چند جا مستر متعدد داره ما سندش مشکل داره از حضرت رضا قال سوئل ابو الله علیه غنا پس تا اینجایی که دیگم اضافه شد امام رضا هم سلام الله علیه ازشون نقل شده در این که غنا حرامه این اسماعه همه تا اینجا مبزم از امام صادقه از امام باقر آمد از امام وزا هم سرات الله سلام محمد علیه رو نه. حدیث شماله به لحاظ سردی مشکل داره مهران و محمد توش هست توصیق نشده راهی برای توصیقش هست چون ابن عبی عمر حتی احتمان کتابش هم نقلی کرده سمع تویبور الغنا من الله من الناس منیشتای لکن انه ابی عبدالله هست زیل مبارکه. اجمالا در روایات ما روایتی که تفسیر شیلی سرش روشن به غنا اون قول از زوره به خلاف آمن اما روایتی یعنی که در لحوه حدیث این غنا در کتاب مجموع بیان نوشته اکثر مفسرین علا اندال مراد به لحوه الحدیث الغنا لحوه قول ابن عباس و ابن مسعود و غیره ما لحوه المربی و عن فعلا بله از عبی جعفر راست میگه این حدیث شماره ده هم عبی جعفر و عبی عبدالله که زیاده و عبدالحسن حسن عبدالحسن روزا کلام کندیم چون من را که کرد مجبور بیان فوق العاده دقیقه پس ایشون هم به سه امام بزرگوار نسبت میدن حدیث شماره 16 تقریبا شبیه حدیث شماره چاردهه مشکل سندیش هم مثل همونه یه مشکل دیگه هم داره اجمالا میشه قبولیتی کرد چون از ابن نوی عمری شما... اون از امام صادق حدیث شماری 17 مرسله دائم از امام صادق حدیث شماری 18 مرسله قطف راودی از ان نبی نمیستون دائم ایکیش هم مغنیه این شواهده در بین اهل سنت هم پیدا نکردند. حدیث شماری این پسیه که حدیث از رسول الله دا که این ظاهرن از مسادر سنی هست اون هم اونجاش هم واضح نیست حدیث شماره 19 این در کتاب جعفریاد یا عشقسیاد هست که این کتاب از امیر المؤمنینه بس این هم حدیث از امیر المؤمنین خیلی عدد امیر رو حساب بکنید. اولین حدیث از رسول الله مامد اول حدیث از امیر حاصلش اینه که عذاب یا من در دنیای اسرائی چند طبقه رو گرفت یکیش مغنین دیگه یکی تبالین لکن این الان مراجع به جعفری توضیح دادیم یک مجموعه ای ما داریم که از امیرونی نقشد آره به های مختلف من توضیح ها داشت سابقه دادنم دیگه نمیخواهم این یکی دو در کتاب جامال احادیس مرحومه جعفر ابن احمد قومی ایشون با یک سردی که شاید خالی از اشکال نباشه انسکونی ان جعفر محمد عبیهن قال قال رسول الله همون حدیث جعفریات رو از راه که گفتم تاب سکونی جعفری یکیه لکه اونجا امیر المومنین اینجا قال رسول الله در دائم هم همینه لیکن با متن جعفریات قال یا علی علیه السلام این تا اینجا از رسول الله و ان علیه حدیث شماره 16 یه مقدار سندش مشکل داره انه عبی عبدالله که در حرم دیگه حدیث شماره به اصطلاف 21 و 20 بود حدیث شماره 21 در باب غناز در بعدان عبی عبدالله حرمت غناز تنش قابل اعتماده دائم هم مسترد نهر می کن وقت این آثاری بیتو به غناز تومنفی الفجیه بعد در, در دائم عبی جعفر در دائم این رو از امام باقر نقل کرده قال الغنایم بتو النفاق فلقل کما یوم بتو النخل و الطر چطور خرما شکوفه میده غنان همینطوره بله باز در کتاب اوالی در کتاب اوالی از پیغمبر نقل کرده حدیث شماره 23 الغنایم بتو النفاق کما یوم بتو ما دقل چون این روز تمامی شده وقت فردا توضیح مطلب رو فردا عرض می کنم حدیث شماره به اصطلاح 24 سندش مشکل داره اون رو از پیغمبر هم راجب اینکی این حدیث از پیغمبر ثابت هسته از بعد عرض می کنم این زید شمحان این عبی عبدالله این غناه شنفا مشکل سند مشکلی داره حدیث شماره 25 اینه این, این همه در شماره 16 بزرد خب میشه یکیه میشه توضیح تصیحش هم حدیث شماره 23 در اخبار و قومی مرسلن ام رسول الله که این واضح نیست حدیث شماره 27 یونوس این هم سرش خیلی واضح نیست مشکل سهل زیاد داره از حضرت رضا سرامالله همه و این رو مرهود شیخ صدو با سنده خاصی نارد داری که به حسب زاهر صحیحه این رو با کشی هم داره این رو قربل اسناد داره سنده قربل اسناد صحیحه پس تا اینجا توانستین ببینیم مجموعا از رسول الله نرد شده از امیر المؤمنی نرد شده خود دقیق بکنیم انه ابی جنفر الباقر نرد شده که سنده مختبره انه ابی عبدالله زیاد نرد شده و علاها حسن رضا نقضه با سعد معتبر شماره 28 از جبران محمد مرسله دعایمه شماره 29 و این رو حضرت رضا به سعد خودش رو علیه ام رسول الله این راجع به آخر زمانه که انتظر تخضون مرمانه چیست شماره سی هم مرسره است ما سندون اینکه هم از روشنی نداره شماره سی هم مرسره است باز هم جزو علاقه آخر زمان در شماره سی یک جامعه اخبار روا ابو امامه از, از کسالیت که خیلی در زمان از رسولا نهار کرده اینجا مرسره ازشون نهاری کرده لیکن باز هم رسول الله شماره سی و دو هست که میخوام تن تن سریعه کنن تفسیر ایاشی از جامل مرزالله حدیثاری نقل کرده انه نبی این هم هست اما خب فوق پر ضعیف اینجا شماره همون یک حدیثیست از کتاب علیت جعفر انه رجل یه تحمد و قال الله کی این امبنی حدیث ما انه اول حسن کازن هی داریم ایندر یکی میکنیم این اولین عب... ع... ع... ع... حدیث ما از عبدالحسن کاظر که لا حدیث شماره سی چار در چار با نوبولوها قطراندیک حدیث شماره سی پنج ظاهرش که از رسول الله چون حدیث هم است حدیث شماره سی و پنج بعد حدیث از عبد الله سهنش معتبر در قوم زور حدیث شماره سی و که عجر و مغنیه و مغنیت سبتان سکن از کردم اینو از رسولان نرکن سندش حدیث شماره سی و هفت سندش خوبه نشون میده که مثلا از هزار زارم هست که مثلا زن کنیزه که مغنیه بوده اون بود، زنیگه که مخاطب بخشه گفته مناسب شعن شما نیست مثلا برخورز این طوری حدیث شماره سی میشه شرطش قبول کرد قابل قبول قبول است عبدالرحم اگر برادر زراره باشه مشکل نداره این از ابی عبداللهه 37 هزار رضا بود این هزار صادق در اینجا و تو انهم یذ امور از رسول الله رخص یعنی حال جناکم جناکم حیونا حیونا و هیکو این شرطش قابل قبول است اما اون متنی که در کتاب ابن ماجه آمده این نیست جناکم جناکم فحیانا و حیافا. یعنی ما زنده باشیم که ما زنده باشیم بود. امام فرمونه دروغ میگن این حدیث ثابت نیست، این هم داریم حدیث شماره سی یه وقتمون شده برد چه لبا این حدیث سند شوچن نیست بله این به حضر رضاست که حضر رضا شده کردن حدیث شماره چهر کلیه تمام عذر بشه مرسله دائم ان جعفر ابن محمد کلا یه هندو بی مرسله پس تا اینجا معلوم شد بیشترین حدیث رو ما از امام صادق داریم از رسول الله داریم از اهم زندتی بقیه حدیث رو از امیر المؤمنین داریم از امام و امام صادق و موسن جعفر و حضرت رضا و انشاءالله خواهیم گفت تو توجیه مبارک رزیز محلی آمده. یک سیر تاریخی کل روایات شیعه تو من برد و خط و خدمتون با ارزیابی اجمالی کدام قابل اعتماد کدوم قابل اعتماد نیست و الله علیه